وی نال بلبل اگر با منت سر یاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست چه جای دم زدن نافه های تاتاریست بیار باده که رنگین کنیم جامع زر که مست جام قروریم و نام و خیال زلف تو فختن نکار هر خامیست که زیر سلسله رفتن طریق ایاری لطیف ایست نهانی که عشق ازو خیزد که نام آن نلب لعل و خط زنگاریست جمال شخص نه و زلف و عارض و خال هزار نکته در این کار و بار دلداریست طلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلسان کس که از هنر آری براستان تو مشکل توان رسیداری اروج بر فلک سروری به دوشواری سهر کرشمه چشمت به خواب میدیدم. دیدم زهی مراتب خوابی که بهز بیداری دلش به ناله می آزار و خط کن آافظ که رستگاری جاوی در کمازاری،